به نام خدا که قرار صحبت امشب درباره عرفان باشه پدیده ای که عرفان نامیده شده که سوالات زیادی مطرح هست و خواهش میکنم صالتونتر است ممنون من میخواستم از شما بپرسم که مثلا کلن ارفان چیست با توجه به اینکه ما الان در تمامی نقاط جهان شاید نهست های متفاوتی هستیم که دم از ارفان میزنند و به نظر میاد که هر روندی که با قانون مندی جهان در تضاد باشه ارفان نام گرفته این موزله رو توضیح به فرمایید و واقعا بیان کنید که ارفان چیست به طور حبیدی ممنون شد باید این سآل دقیقت سآل شما رو با سین تکمیل کرد که واقعا ارفان چی چیزی نیست به جایی که بگم ارفان چیست و فگم این چی چیزی نیست ای چون به نظر میاد که امروزه هر کسی خودی است و دم از ارفان میزنه و بعد انسان که میگاه میکنه اصلاح میکنی که آیا واقعا کسی هست که عارف نباشه پس من فکر میکنم سوال رو اینطور تر بکنیم که واقعاً چه چیزهایی عرفان نیست ازازه منطقی و بحث پدیدار شناسی که اساس بحث شناخت توحید هم در حکمت بوده و هست که این رو امروز در فرهنگ فلسفی اروپا در مکتب مخصوصا پدید شناسی است به کاهش منطقی در فرهنگ فلسفی اسلام استدلال سلبی معروفه به بیان دیگه استدلال لا الهی یعنی بسید میگین لا اله الا اللا در واقع لا اله مشمول این واقعت که چه چیزی خدا نیست لا اله در واقع یعنی خدا نیست الا الله یعنی خدا نیست الا اینکه اکسش ثابت بشن الا اینکه باشد خدا نیست لا اله الا الله این خدایی نیست مگر اینکه خلافش فوق قول ملوف ثابت میشه که هست مفهود بسیار ثابت لا اله الا الله اینه ما از چشم های منطق لا اله الا الله به این سوال باید میشیم چرا که عرفان رو آنگونه که همه بزرگان و حکیمان و عارفان جهان گفتن عرفان گفتن نهایتا است خب بنابراین پس ما اگر عرفان هم از این منتهی نوا کنیم از درست ترین منطقه کردیم. اون ارفان مهوری و در صدر همه شعارهاش خداشناسی است نه خداشناسی فلسفی کلامی استدلادی بلکه خداشناسی که از طریق خودشناسی ممکن میشه فرق عرفان با خداشناسی های دیگر در همین ارفان خداشناسی از طریق خودشناسی است تابوت ارفان با فلسف همینه توبوت ارفان با منطق هم همینه. توبوت ارفان با سایر و لما همینطوره. چرا برای اینکه یک عالم یک دانشمند هم در حیقت می تواند از طریق شناخت طبیعت آن در دستوری شناخت خدا باشد. ولی این شناخت ارفانی نیست. شناخت علمی خداست. شناخت منطقی خدا. شناخت فلسفی خدا. ولی ارفان یعنی شناخت خودی خدا. شناخت خودی خدا. یعنی خدا رو در خود شناختن عرفان حالا اگه برگردیم به منشای نخستین عرفان اسلامی که بزرگترین و نخستین سخنگو و اصفش امام اول شیعان حضرت علی علیه السلام هست در یای از احادیث و سخنان امام بزرگ در نرکل بلاوه و در مجموعه قولر و حکم و کلم ما شاهدیم که همه جا خداشناسی فقط از طریق خودشناسی ممکن شد سخنان بسیار فراوان هست چندتای شما به طور مثال سفرمیسون میدیم به تحقیق که خداشناسی همان خداشناسی است هیچ کس خود را نشناخت الا به واسطه غبی که منظور همان امام است هر کس خود را شناخت رستگار شد اینا تمام سخنانی حضرت است هر کس خود را شناخت نجات یافت آن کس که خود را نشناخت هلاک شد هر کس خود را شناخت همین چیز را شناخت هرکت خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت اینها سخنانی هست در باره و معرفت نفس که همون که مشابه این هرگز در تاریخ شرق و غرب جهان سابقه نداشته یا سخنانی مثل که در حیرت هم از مردمانی که در جستجوی گم شده ای هستند ولی خود گم شده و هرگز در جستجوی خود نیستند اینها فقط چند نمونه ای از سخنان ام در باره ارزش حیاتی و وجودی خودشناسی بنابراین خودشناسی همان عرفان است در اسلام در واقع ارفان. یعنی خودشناسی یکی یعنی صاحب یعنی چی ارفان یعنی خودشناسی خودشناسی که مخصودش به خدا میرست خداشناسی منتا خدای خودی خدایی, خدایی که در خود فرد حضور داره نه خدای آسمانی نه خدایی که در طبیعت حضور داره نه خدای فلسفی و منطقی خدایی که در نفس خود فرد هست ارفان اسلامی همین ارفان های دیگر مذاهب هم کم و بیش این معنا را در خودشون تدایی میکنند، کنند ولی انقدر قریان لغت کامل و دقیق نیستند و نبودند ارفان هندو، عرفان چین، ارفان مسیحی حتی حکمت ایلیایی یونان باستان این مفایب دارند هرگز اینقدر واضح، دقیق و عمیق و جامعه هرگز این مساعده رو به صورت مکتوب به تاریخ و جایی نگذاشتن باقرد این که خودشناسی همون خداشناسی است و خداشناسی بیره از طریق خودشناسی مکان فرزید نیست فقط در احبان اسلامیست با نیشن امام اولی این مسئل در حکمت ایلیایی یونان باستان مشابه این سخنان موجود داشته حکیمانی مثل پارمینیت مثل اکزنوفانس مثل جورجیاس هرکیم مثل زنون و بعد مثل سقرات هرکیم اینان در باب خودشناسی کم سخن نگفتم البته سخنان زیادی از اونا به جا ولی همان قد که به جا اول و آخر پیامان ها به مردمان به پیروبانشان همین بوده. که آقا خودتان را بشناسی که به هیچ شناختی ممکن نیست مشروطه این این سخنگویان سقراته ولی خود سقرات شاگرد و مورید حکیمان ما قبل خودش بوده که معروفا به حکیمان الهات که در بندر الهات ریست میکردن که پارمینیتس و اکزنفانس و زنون نخستین آنها بودن و تمام تلاشان مقمن ها خودشناسی بوده و مردم رو به خودشناسی دربت میکردن قرن چارون پنج و ششون قبل دولاری مسیح تربن هم زمان با این دورانی در چی باستان هم حکیمان بزرگی مثل لاوتسو و منفیوس که خود از شاگردان و مومیدان لاوتسو بوده وجود داشتن که تمام ترکیبشون بر خودشناسی بوده و جز خودشناسی هیچ علمی رو این هاستان قبول نداشت مشابه این سخنانی یک کمی بدتر از حضرت بودا وجود داره که خود از بانیان اصلی ارفان هندو هست که البته این ارفان هندو روشه در حکیمان ما قبل از بودا داشته در آثار اپانشادها و وداها موجود این اندیشه ها تا جایی که شعار اصلی کتاب ها، و خلوصاً وضاها این است که ای انسان تو خود تمام جهانی همینطور که در قرآن ما بسم الله الرحمن الرحیم اون محور پیام قرآن و در صدر هر سوری هست این جمله در فانشات ها مطارده با بسم الله الرحمن الرحیم این میده که در مذاهب اندو تا چدی خودشناسی اهمیت داشته که ای انسان تو خود تمام جهان این جهان رو در خود دسته مسخوان رو خیلی داشت در حضرت علی, علی افلام داره که این تو عالم اخترى یعنی جهانی کوچک شده ای بیان دیگه امامینه که آدم هستی انسان اکبر است این انسان اگر وسعت پیدا کنه میشه کل جهان هستی جهان هستی رو اگر فشورده و کوچک کنیم میشه انسان بنابراین تا اینجا یک تعریف تقریبا ملموسی از عرفان قابل استنتاج هست حالا سوالی که شما فرمودید به نظر من بسیار مهمتر این روزه خود شناسی خودشناسی میشه گفت مثل شعور جدول دربیه مدارس همه از بر هستند ولی این شعور خودش این روزه سهل و ممتنع و حتی حج و مسغره شده متاسفم ولی سوال شما بسیار واجبتر و احساسی تره سوال شما رو من باز در ریستر توضیح میدم برای خودم سوال در واقع اینه که امروز همه عارف هستن حتی آقای کلیمتونی در کاخ سفیدم در وی ارفان به می کرده به حافظ اصحاب ارادت میکرده گوی حتی میگن تفاعل میکرده دیگه شراع شرقی که خیلی واضح تر بله در خود این حیالت مدتده امریکا الان بزرگترین در د در اونجا جاریه سه چهار هست در اونجا جاریه که بسید این نزدهایی پیگری خود نمایی می از در کشور خودمون شاهد هستیم خصوص در لیتی دو دهی اخیر همه خوصا این دهی اخیر به نظر میسته اصلا تمام مردمان ما خصوص جوانان در قشر تحتیل کرده و علما همه عرفانی شدند هر کسی از هر چیزی میخواد حرف بزنه با ارفان شده میکنه. این یک نظافت جهانی است. کوین که در آغاز هزاره سوم انگار جهان داره ارثانی میشه و کلی بشریت انگار میخواد عرف بشه. این مدت به نظر من زیرا وشناسیه اجتماعی ماهی شناخت فرهنگ و بر اینکه این تمدن در چه استیل آور داره الان بسیار بسیار مهمه که این یعنی چه چرا همه اساسات ارثانی میذارن که این یعنی چی؟ منی سالی که شما فرمودید بیمه مهم مهمه نکته بسیار دریدش ماشاره کردیم و اون این که منذره میسته که عرفان و تمام این نزده های بسطلاح ارفانی که من اسمشون نزده های شپه ارفانی میذارم که ارفان مفقیت ملعبهی کردن بر علیه قانون بر علیه نظم بر علیه اخلاق بر علیه هست که اسمش عهد ترخوت و وفا قص اون که ارفان هم انگار ارفان یعنی زد اخلاق زد عقل حتی زد عقل این خیلی عجیب. به همین هستش هم که این نزده به در اول هم جنونگرا و جنونپرست هستند تو این اخبار ها ما شاهدیم که ابتن همین نزده های به که جریانات گوناگون کیپیگری های نو هست جنون و جنایت قوغا می کنه. خودکوشی های دست جمعی آدمکوشی های دست جمعی حتی این گروه های شیطان پرسته که اخران درست هدن توی آلمان و امریکا و همین جا هستن در ژاپن هم مثلی خیلی ترسا پیدا کردن که حتی آدم رو زنده می کباب می و می خورند. هم نه ادامه تقاملی استضای نزده های شپه ارفانی پیگری دهه های قبل هستن که الان به شیطان و دستی علنی رسیدن اینها رو با باستی بدونیم که از کدار سر درابوردن گویه های موسیقی موسیقی راک و لیپترونیک و عسید راک و امساله جنبه و زمینی ای از رشد این ارفان بوده ادبیات رومانی و سینمایی مثل داستان های کارلوس کاستانادا و اون اصفه و جادویی که آفریده تا از عنوان دنخان که اکثر آثارش هم در ایران ترجمه شده خودش یکی از زمینه های روشنفکری روشن فکریه این نوع ارفان بوده که این آقای کاسانیزو علمان به همچین ارفانی رو کاملا استفاده از مواد مقدر و خصوص و خصوص پیوت و ایلیسی تجویز کرده که میخواد عارف بشید با را پیدا کنید و پرده‌ی با معروف غیب بشه برای شما فردا را کنار گره بله باستی کسانی <تصفيق> مثل کلیشنا مرسی که از قرفهای از سخنگویان عارف مشتار هندو بود و عمری را در امریکا زندگی خود یکی دیگر از بانیان و توصیه دهندگان چنین عرفانی در امریکا بود که به ایران رسیده تا جراپو نمارفته در سراسر هم من شاهد بودم که سرایت پیدا کرد و یک کسی مثل اوشو که اخیراً خیلی باز در ایرانم، آثارش ترجمه شده اوشو یه اوشو. اینا جالب نیکاماشن از آمریکاش بودی که نه آمریکا بود و خیلی جالب این نرفتنش همه از میشه و بعد تازه اینها هندی هست ولی در آمریکا میکنن و بعد اون به هندوستان باتر میشه توده چهار پنج بعد. مسئلکی که می صحبتوش رو اینا رو میگه تمام شد و از این که تمام شد اونا مردا تازه به ایران و به کشور آسیایی رو نمیسه ها های دیگر های از این قضیه بوده از این اسمایی که بردم الان صدها نفرند حالا اینا ها مشخصی هاش بودم چند تا من اسم مردا مشخصی هاش و یه مقدار حاضرترین هاش بودن ظاهرا خب اینکه چرا اینا از امریکا شروع میشه خود قابل تعمده ولی الحمدلله شما فهمیدید گوییم که احفان در اینجا به عنوان هربی بر علیه قانون نظم، انضباط، اخلاق، شرف، عهد، وفا بله واقعا از این دیگاه بهتر میشه فهمید که باعثیم از آمریکا شو بیمیشد چرا؟ برای که امریکا سرزمین به استدا آزادی یعنی آزادی از عقل آزادی از شعور راهایی از وجدان و وفا و پا نهادن خطرت و اخلاق و مذهب کارخانش در اونجا است. خب آمریکا محل صدوره که این اردش های زده هست برای هم به آزادیه ماده آزادیه یعنی آزادیه از هر چیزی که انسان رو متعهد بکنه خب نظر میسته این موسیقی ها این عدبیات های که رسم بردیم این به صلاق و های هندی که رفتن اونجا این بساطه رو رو به نظر میسته این ها خواسته چیز بودن. چرا این ها در اونجا رفتن؟ بله خب که دیدن که اونجا بهتر این مسائل روش پیدا میکنه. امکانات را رسانه ها هستن دانشگاه ها خیلی ها تبدیل می سرمایه ها بودجه ها و تبدیل رسانه ها ها اینها در سراسر جهان تبدیل میکنند. خب ما می بینیم که جنون و جنایت و موارد مخدر اناسور ذاتی این ارفانند اناسور ذاتی این ارفانند نبرد بر علیه اقل و دین از اناسور ذاتی این ارفانه و جنون و جنایت و احتیاط هم آقابت ای این ارفانه این احتیاط به اصفاد نیست شما رو باز کنیم و ببینیم مشابه ایرانی آسیای شرقی و اسلامی هم ما شاهدیم تحت سر سلا و های در که امروزه کم و بیش اونها هم به همین سمت دارن گرایش فضا میکنن حالا طبیعی نشون فرق میکنه واجده هایی که به کاری فرق میکنه و میبینیم که این زدیت با عقل و وجدان و دین و شریعت و زدیت با عهد و وفا و گرایش به مقادر به عنوان انصور ذاتیش این عرفانی میبینیم در اکثریته سه صدای در که ما شاهدیم حالا اگه همش نه بیشترش برای این اساس دارن این موزه به اینجا رسیدن، در گذشته چه بوده که ما نبوده نمیدونیم ولی این روزه همین هاست و در واقع نوعی هیپیگریه اینطور توجیه و تصفیهش فرق میکنه حالا اونها از محتونه نمیدونم شعارهای های مرتی و اشو و نمیدونم کلمات سال آقای دونخواهن استفاده میکنن اعتمالا فرس ها و اینجا اصمالا از اشهار مدربی و حرفیز حتی چه بازه از آیات و قرآن و سخانه از علی اینها را چاشنی استفاده میکنن هر کسی از مواد فرهنگی بومی خودش استفاده میکنه اینا خیلی فرق نمیکنه ماهیت عمل و آقومت واحد اینها نشون میده که اینا ماهیتشون یکی بوده و یکی هست علا بر اینها ها ما میبینیم که خود سینما و جلوه های ویژه سینمایی و به صلاح سینمای فلسفی ارفانی هم شاخی دیگری از این نهزت و تقضیه کننده این نهزت و گرایشات مدل این ارفانی بوده مثل دیگه قشنگترین هاش مثل سینمای تارکوفسکی و برگمن و رنوار هست سینمای ارسون ویلز یا حتی هیچکاک یا سینمای جان هیستون ما میبینیم که مقدار زیادی این سینماها و مکاتب سینمایی هم در خدمت پدیدآورند و تشویق دادن این نوع هم واجبه به سبح بوده و هست در کشور خود ما هم این رو ما شاهدیم حتی این اعتقاد داره فرید میاد که گویی اصلاً عرفان فقط در هنر سینما میتونه تحقق پیدا کنه و بدون سینما اصلاً عرفانی ممکن نیست حتی این داره تعبیر به ایدئولوژی هنری میشه هنر عنوان عرفان که آقای عرفان هم هنر است و هنر همه ارفانه است شعر و شاعری و حالتهای جذبه و خلصه و نشعه شاعری همین شعر که پیش بوده این بوده خیلی بیشتره در ازر میسته که هرکتی شعری گفت و آهی کشید گون که آرف شده و میبینیم که این آه کشیدن و شعر گفتن و خق گفتن و حوشنیدن هم ما میبینیم که در اکثر موارد و این محافر میبینیم جز با مواد مخدر ممکن نینیاد خب ما این چند جنبه ای از این گرایشات کازه و رسوانی رو ماند وقت نگام کنیم که نیگه مشترک همه اینا مخدراته افیون، الستی، هشیش و موادهای جلیدی که مثل جادوی سیال اشک شیطان و این مقبولات که حتی میگن از هیروین هزار برابر قدرت منتره یا مواد تواهمزا و روانگردان که به صورت داروهای پیزشکی در همه هست. ترتیبان با اخسام داروها این هم همه از الستی برداشتده داروهای شادی بخش داروهای اشق آفرین داروهای نمیدونم ارفان آفرین در واقع این داروها رو این مواد رو مصرف کنید تا عارف بشنید تا احساسات ارفانی پیدا کنید خب خیلی جالبه اگر عرفان رو در و باقره به جهان از قدیم دایم روی گفتن اقا خودشناسیست معرفت نفسه این چیز نمیتونه میکنه بشه که مواد مخدر انبای مواد سکرابر نشکننده مسکننده، کننده موادی هستن که در خدمت خودفریبی انسان در این که شرقیبی نیست این روزه یه آلم آمی گبرو مسلمان و یهود و نسارا و کمونیست و ملحد و لایک و ماتیریالیست و فرمه نیکنه دیگه الکر هشیش در خدمت خودفریبی انسانه این واضحه اینا هم عباد هستن انسان رو نسبت واقعیت کور می کنن منطورت هم انسان رو واقعیت خودش کور می کنن. پس همین نکتر اگر ما نگاه بکنیم می‌تونیم توانیم بگیم که این نظرت های به اسطلاق عرفانی موجود جدید در شب و قلب جان و در کشور خودمون واضحه که این نظرت عرفانی نیست بلکه زد است. اگر عرفان یعنی خودچناسی یعنی معرفت بر واقعیت کاملا عکس این واقعه رو انجام بودن یعنی تدایشی اصلا برای خودنشناسی و خودفریبی در این طریقه نیست نتیجهش هم این رو نشون میده که همه این رو جنایت و طبع و جنایف های کنان میرسه اخبار خودکشی های دست جمعی این بروه های بسپایی اسفانی در امریکا در ژاپن، این رو ما کاموی شاهد هستیم و ببینیم پس مشخصه که اینها نه تنها نوری از ارفانی انوای از ارفانی ساندی هم نمیشه اینا رو گفت مدرن و اینا محساب محساب. ارفان مدرن باید که باید که اینا های لده ارفان مثل مصحب زده مصحب استفاده عرفان بر علیه معرفت پس در حقیقت باید سی گفت اینا دجال های ارفانی است ارفان های دجالی است پسی وارونه ارفان است در این مورد کافی شما رو باز کنیم و این قضاوت قضاعتی واق... ایست کاملا واقعی یه قضاوت ایست کاملا اینی قضاوت ارفاهی نیست برای دیدن این واقعیت ایجای نیست آقف تا این حد کاملا مورس ممنونم از پاسخ شما اینجا یه ساله دیگه مطرح میشه برای من که چرا واقعا هرچه بشر به سمت این بیقانومی و این بی اخلاقی میگه پیش میره که اسم امروزی این بی اخلاقی آزادی است و همون میزان گرایشات ارفانیش افزایش پیدا میکنه در حالی که ما عرفان رو ذات مذهب میدونیم اما به نظر میاد که این عرفان که توجیحگر این بی اخلاقی شده ضد مذهب و ضد شریعت. پس شما این رو برای من توضیح بدید درستان که این ارتباط عرفان با دین و شریعت چیه و این تناقض چی من ممید شما میکنم من اینطور که توشبت ها رسیدیم نظر میمیسه که ما در قوارد اصلی داریم میشیم که کلی بشر داره به سمت ارفان میده و همونتون عارف باشن این ارفانی شدن و این گرارشات به اسطلاح ارفانی از دکنهای رمالی و ورد و جنگیری ها گرفته تا گنجگیری و در جستجوی روی گنج بودن که خیلی باب این روزا تا شعر و شاهری و هنر و سینما و مرتب اصالت هنر برای هنر رو سینمای به عرفانی گرفته تا جنون برستی ها ها تا شیطان برستی و آدم خوری این مجموعه طیف این گرایشات مدرن عرفانی رو در وقت و تا جریاناتی مثل به اصلاح ارفانی که باف شده که در واقع میشه گفت یک نوع ارفانه ببخشید این حرفونی زنم ارفانه کاباریی و بیسکوتیکی منطبه با ایک سری الفاظ و کلماتی که از مسئول مذهبی استقراج میشه حتی میخوان رخ رو از ها هم عرفانی کنن به نظر میگذر جالبه هانری برکسون یکی از فلاسفه حارف مشرب قرنی بیستم فرانسه یه جمله خیلی مشهوری داره در یکی از که ترجمه هم سده به تحت عنوان دو دین و اخلاق در اونجا که امروزه حتی به نظر میرسه که امپریالیزم و امپریالیستا هم دوست دارن که عرفانی بشند یعنی استورهی بشند حماسی بشند و گویین که این پس استمرار نظام سرمایداری در امپریالیزم که فقط با ارفانی شدن ما این هم واقعیت دیگر ایست این امروزه این حرف رو وقتی برقسون زد هنوز این خبرها خیلی نبود چه بسا چنین شمه یا چنین سیمایی رو شاید در هیتلر اون موقع میشد درک کرد و خب هیتلر واقعا ادعاها و احساسات عرفانی داشت ما می که هیتلر معروف است در زندگیش که در محافل مادام بلاوتسکی روسی به یک زن به نظر صوفی مشقبی بود در اونجا رحضا آمد داشت با معارف عرفانی آشنا بود و بعد با مطالعات آثار فلژگنیچه آلمانیزه کرد با قول کرد ارفانش رو و شد تیتلر آن چیزی که در تاریخ اتفاق افتاد ولی امروزه این قضیه شامل حال انگار همه ی حکومت ها میشه همه رهبران رحبران میخوان آرف باشند اسطوره باشند الهه باشند خدایونه باشند باز این قضیه شاملاله حکومت‌ها دولت‌سازان میشه فقط مردم هم نیست متواهراتی در شرایط خودش این رو باساب میده گلايشو الرفا این قضیه رو بس درک کنید اینو قابل فهم یعنی باید استفامیده بشه ما فقط با تردید اندکندن نمیتونیم حقیقت رو بفهمیم واسه بفهمیم یعنی چی به اگر اگه ما در حیفه فهمی نه داریم واسه بگیم والله لاز الرفانی این وقایع چه معنایی داره این بتالت‌ها داره بر. چه چه است؟ در که حق ابطال یکی از بزرگترین مسائل عرفان در تاریخ باشد بوده در که حق ابتال در بتالت هم است، حق ابتالت حق ابطال، بسیار بسیار مهمی در حکمت بوده و هست. یکی از بزرگترین حالایی که ارخواه ها در تاریخ خصوص ارخواه اسلامی حافظ و مولانا و اتا آمدن حق و حقوق ابتاله های بشری نشان دادن این نشان دادن که در اشد ابتاله و بطالت ها و جرون بشری چه حقه وجود داشته که بشر از اون قافل بوده ولی حقی بوده که بر اساس اون حق و نبرده با اون هرچه این ابتاله بزرگی روخ حالا این مثلا که برمودید سامیل این نگاه بایستی بشه ولی بشری امروز به این کلام میشه گفت به که به بتالت و پوچی ها به رسوایی ها و انواع عذاب و دردهایی بیدرمان جسمی و روحی و روانی و اقتصادی و سیاسی و حکومتی و ایدولوژی میرسه به نظر میرسه که ارفانگرات هم میشه ما خود شاهدیم در کشور ما در جاهای دیگه بسیاری از ها و کمونیست ها به ناگاه گرایشات ارفانی بدا کردن به راست و دروغ خانه نوع بوده، نوع به نوع یک ملعبه بوده نوع بوده. همین میطور که ان واقعی داریم عرفان جعلیم هم داریم. همونطور این مذهب حیقی در طری سیم و مذهب ریاری و نفاق هم داریم پس میتونیم از عرفان ملافانه هم صحبت کنیم. ان افانه. ازثر آچاری منتانه ملافانه با کلمه نفاق ما چ لند کنیم نبا نند کنیم باید این نفاق رو هم بفریم نفاق عرفانی رو بای فهم کرد. چرا بشر ها به نفاق عرفانی و نابده و کل بشرلی گروه گروه موج ب موج. به این سمتی که رایش آخرین راه ادامه بقا بر روی زمین گوییم که بشر مجبور خودش رو ارسانی کنه خودش رو به هر تجایی هیچ طور نشد با مواد مخده با خودش احساسات عرفانی از بیرون تذریق و الگاه بکنه و تلویم کنه به خودش ما می که در فرهنگ اسلامی در فرهنگ تشعیب حضرت علی علیه السلام به عنوان سلطان عرفان اسلامی ملقبه به برپاکننده قیامت پرچندار قیامت اسلامی لغا بهشان علی برپاکننده قیامت و علمدار قیامته. قیامت قیامت آخرازمان بله نشانه های قیامت و آخرازمان رو, رو روز جهان مسیحی هم درک کرده علما اسلامی هم درن اختار میدم که نشانه های قیامت داری پیدا میشه در زمین و آسمان و در نفس بشر این یک بسید مفصل دیگه است که جاش اینجا نیست ولی این اشاره بی نهایت واجبه یعنی آرف برکبا قیامت قیامت نفس قیامت نفس اینز هر دریجه از معرف و ایرفان برکبا قیامت طبقی از همون نفس است در اجاته معرفت و در اجات ایفان رو هم باستی مشمولی این بکنیم تا در اجات قیامت هم درک کنیم در قرآن قیامت معروف به یک روز پنجاه هزار ساده آه؟ به نظر من ما این در این روز پنجاه هزار ساده قرار داریم به نظر من با شروع اسلام قیامت آغاز شده و هزار و هندی از این قیامت داریم میگذاریم بنابراین اگر ایفان برخواه کننده قیامته و عارف کننده قیامته هست. کننده نفس. چرا انسان وقتی که رو به خود میکنه میخواد خودشو بشناسه قیامت رو استاشتش رو زده قیامت روز هرکی رو به خودش میکنه یا خودش رو نگاه کنه ها؟ این سواقه درسانه ها؟ قیامت برپا میشه و بران کریم داره قیامت سریف شده خیلی واضح جنبه های انسانی قیامت اینه میفرماد که قیامت آن روزیست آن موقعیست است که نهانه های انسان آشقا میشه و تعین بدان میکنه به فعل در میاد و در آن روز کسی است که آنچه که که نفس خود میبینه انکار نکنه تصدیق کنه پناه و به با خدا و توبه کنه و شغلی بدبخت است که انکار میکنه میگه نه این من نیستم این دیگران هم من نیست چون این کتی به غذا میشه پس معلومه که آنچه از نفسه شرور و کافر انسان آشکار میشه تمام شرارت و پدیدی و جهل و جنونه. لذا انسان جواب میگه بخا این من نیستم. این مال همسایه بغلیست، این مال حکومتاست، این مال باباننه‌ی منه، این مال منه، این مال رو بچه‌ام منه. من خودم من پاکم، مقدسم، عاقلم، آدمم، اینا مال من نیست. خداوند در قرآن که چه انسان بعد وقتی عبدالهه کار میکنه خودش رو به عذاب محکوم میکنه خودش. رو. نادرین خودشو بگید و بیان دیگه عرفان همان دیدن نفس خود شناختن نفس خود و استخراج و برون طبقات هزارلای نفس خیشتنی به واسطه معرفت معرفت نفس همان ارفان است و شناخت نفس است و به دین است که به حضرت علی, علی اسلام اکثریت مردمان معرفت نفس رو دوست ندارند خوششون نیمی آمد. و خب، اگر این وزه ما در قلمروی روی زمان قرار داریم اون قیامت پندردار ساله پس جبرن نبا معرفت نفس با بشار دوچاری بودن نفس داره نفوس داره به فیل در میاد در قدم مدرنیزم و تکنولوژی به فیل در میاد چه اشکال میشه آزادی دموکراسی جون جنایت هر جمعه از توحش فساد شیطنت خودکشی آدم آدمخوری خب و این روزفصون چه چیز این رو روزفصون کرده؟ تکنولوژیست. تکنولوژی تکنولوژی به یاری انسان آمده جبرن تا انسان برون افکنی کنه نفسش رو به فعل دارده ولذا انسان حاضر میرد بفرگیره انسان جاهده که این منم این هم دارم مجالیت از منی ولذا میخواد رو ببنده هوششو ببنده حوششو رو نابود کنه شعور و وجدانشو از خواهر بندازه تا نبینه رو، مواد مخدر مخاطر، داری نشه و این سری توجیرات و خودفریبه های پنهان شده در واژه های بستلا فلسفی و عرفانی و مالی خلیه و هنری تا نبینه رو. پس معلومه که این گناهی شاد به صلاوی در واقع اون رفانی سدهانی نبرد که برایه قیامت نفسه. ها؟ فقط روش شبهه واسه بقوله واقعا. چون این رفانی عذاب رو به خودش واجب می‌کنه. بذار که توبه کنه ببینید که خدایا اصل خودت به توبه می‌برن، دیگه داخل من نیستم مثلا. این تفریج جامعه است، اصلا دست خود, خود خداست، به من چه مرغوطه. چون انسان شادیمش رو برای ختم عذابه مقتلا میشه و اعذاب و جهنم رو در همین دنیا بر خودش واجب میکنه چرا در قرآن کریم آمده که جهنم آشکار شد دوزخ آشکار شد یعنی این با اسلام شد دوزخ همینه تکنولوژی تماما آتشه. آتش آتشخار نفت از اماق زمین میاد بالا سخنی از رسول که خوراک اصلی و مهوری از دوزخ نفته از لغت نفت استماده شده در حدیث قسطی. نفت. انا بلید دوزخ آشبار شده. این دوزخ نفت نسان. پس این ارفانهایی این شکلی از ارفان زده برای انکار خیشتن. خسناسی نیست. خدفریبیست. و زده ارفانه اینا. در این تردیلی نیست. این بازه هست. و اما رسمان دیگری از سالی که فرمودید اینکه حالا نهایتا دین و اخلاق چرا به تیبایفان داره شریعتا چرا به تیبایفان داره ولی از یک راز این که واضح ارفان مغز دین شریعته از بطن دین بر آمده انبیاه و ولیاه و قدیسین بانیانه و ارفان هستند. ولی منظر میسته اگه این ارفان زده دینه خب طبیعی است که این سو استفادهه بشر ابله و کافره که از دین برای ای دین استباده میکنه از عرفان برای دین استفاده میکنه طبیعه این سو استباده است باشه همیشه اینگاه بکنه نفاق شرطیم اگه نداشتیم در فیلو تاریخ داران سال این هم نفاق عرفانی است و اگر نه در این تردیدی نیست ما گفتیم خودشناسی عرفان یعنی خودشناسی خود عرفان اگر خودشناسی است خب کسیناسیه این شناخت به طبقات نفس وقتی من میبینم که نفس من چقدر شروعه چقدر سعیب کاره چقدر بخیزه چقدر اصلا دشمنه خود منه جز هر دیگی و فستاد و جهل و جنون هیچی ها نمیشه و هیچی که میخواد خب من اگه آگل باشم و با خود پشن خودم پشنستم چه کار خودم طبیعتا از نفس خودم پرهیز میکنم نفس خودم رو سعی میکنم مهار خودم یعنی دین یعنی اون فاز دیدین طریقه که اون شریعت مشریعت ولی مکانه طریقه است با ارصاد با معرفت نفس که دلیل اون افزیده اصلا لا تو دیگر اندی جاست با شریعت و طریقت و حجرات اینا یک مجموعه واحده حتی سه مرحله نیست نه مراحل نداره یه یک واقعه واحدیه علی امامان ما اینا واسبوی عرفان نیستن نه حسین عرفان و کاملش عرفان ما نیستن یعنی واسبوی شریعت هم هستن اصفه شریعت هم اینا از اون ارفانی که زده شریعته شریعت رو خلاف میدونه اون ارفان نیست اون شیطنته اون ابلیسیته در این تردیدی نیست تمام گرفه های ما اصفه های و اسمت و تهارت بودند امامانمان در رستش قرار داشتن پس این تطوری واضحه که باطل یک دروغ و خداگاهی بدن یک خودفریدی کام آگاهانه و عمدی هست بدون تقوا نمیشه معرفت نفس داشت و بدون معرفت نفس هم ممکن نیست یعنی اهل تقوا عبادت ها بدون معرفت ممکن نیست این سخن در قرآن هست در حادث قدسی هست در دریایی سخنان پهنبار امامان ما هست که دعایی در نزد خدا مقبول میشه که با معرفت باشه اجابت دعا مشروط به معرفت دعا اگر از اساس دین و شریعت و ترواز پس معلول, معلول خودشناسی است این کاملا واضحه برای همین عبادت به خودی خود بدون معرفت هرگز خاصیت نداره و تبدیل عبادت ریایی و منافقان و اکراهی میشه شریعتم بدون معرفت تبدیل به شریعتی منافقانه و دروغی میشه و انسان رو شققه میکنه و گدافرتون از منبع اینم پایین اون کاری دیگه ای میکنن ها تمام مظاهرتون بدون معرفت در مردم تهی شده به نفو رسیده و لزوم ظهور بشه و خود شایعت هم از بین رفته یعنی برای اینکه اینقدر از اپتاره که انسان مجبوره که شایعت رو بزرگ بزاره مثل مثل از ظاهره باشه قابل بشه مثل جامعه این روزا در امریکا از خاص نفو اونجا رسیدن ولی این هم خود کار خداست که اجازه نمیده بیش از هر انسان از دین و شایعت و اینقدر قسط استفاده کنه کافره باشه این تظاهر به دین کن این واضحه که تقویه و عرفان دویه چه که دین هست بدون هم دیگه اینها مطبعا ممکن نیست من نمیده از پاسختون سال بعدی من درباره زنان هست و این که افن توضیح بدید که های زن رو با ارفان کاری هست یا نه زیرا در این نگاه تاریخی که ما به عرفای جهان می هیچ وقت اسمی از زن برده نشده البته شیخ از رابعه صحبت می کنه در که زن به تفکیت روزیش ولی خب بیشتر به رزن میاد که ایشون یک زاهد بودن تا عرف. و اصولی در تاریخشی زندگی عرفا هم ما می بینیم که اکثریت اینها ازدواج نکردند. این عدم ازدواج اونها به نظر میاد که نشونیده زن رو در تضاد با معرفت یا ارفان خودشون یافتن و یا احساس کردن که مانه رشد اونها در عرفان خواهد شد اینو رو توضیح بدید که واقعا زن آرس ممکن هست یا نه بعد چرا اگر نیست چرا اینو فهمی سواله ادقال برای یک زن به نظر من برای یک زنی که صاحب شعور و تفکری هست مهمترین این سوال مخلوصا همین سوالی که جنابولی فرمودید که آیا زن عارف ممکن هست زن میتواند عارف باشد و یا اینکه زن در تداب با عرفانه نه که زن نمی تواند آرف بشه بلکه حتی مرد هم برای آرف شدن باعثی روحبانیت پیشگیر و در انزوا باشه و زن فرار بکنه این سال خب بدونید این یکی از جریانات حاکم و تفکر مسیحی روحانیت بوده روبانیت هم مفهوم اصلی و میزویش یعنی فرار از زن برای مردا همچنین فرار زن از مرد برای اینکه به قداست رای ارفان و به هر برسه یعنی به نظر که زن و مرد هر دوتا برای رسیدن به حق به معرفت به خداشناسی برای از هم فرار کنن و تارک دنیا بشنن این یکی از جریانات بسیار مسلط بر فرهنگ مسیحی بود. برای که فرهنگی تقریبا نابود شد رفت آخرین تجربه شو در دوران قویون مستاف هست و اون همه و جنایت و تقریبا میشه گفت دیگه همچی فرهنگی وجود نداره دیگه الان هم اگر نگاه کنیم در سومه های مرسیهی در اونجا دیگه ما میبینیم این سومه ها تبدیل شده به آسایشخای روانی زنان و دختران در بدر و بیمار و رنجور و بی خانمان شده دیگه اون معنا رو دیگه ندارد و این فکر هم دیگه منقررش شده باقیم در جانه غرب در جانه اساسا اصاسا منقررش ولی همچین طرد فکری بدون تردید در اسلام هرگه وجود نداشته تا ضدش زدش وجود داشته و هم برای اسلام ازدواج رو از واجبات و ارکان دین اسلام قرار داده اون واضحه چرا به توضیح و آیه و نداریم برای اصفاتی جنوی اسلام منوان خاتم و سرور انبیاء و کامل کننده دین خدا و امامت ما میبینیم که در مجموع چیز خوده سیزده تا همسر داشته ایشون. اونم در فوارت و گرسنگی کسی که نون نراشته چکم خودش رو سیر کنه تهنگ بشه که میبسته در مجموع سیزت ها همزره خیار کرده که ما میبینیم که اکثریت اینها این زنها این زن ها، زن های آوار فقیر برده درمانده چند تاشون اصلا پیرزن زن مفلوق بودند به ستناه خدیجه خدیجان مدفعه هم بلد خودفان زرست تر بوده پس این اهمیت در اسلام پاسه خوشما جوابش واضح در اسلام نیست بلکه اکتشه حتی روایت است از بایزید بستامی به عنوان یکی از بزرگترین عارفان تاریخ اسلام که مولای رومیشون رو سلطان عارفان می نامه میشون خب سهران ازدواج نکرده به خاطر شرایط که داشته ویجیگی های خاصی داشته بایزید همیشه در بدر و آواره بوده و تبعید بوده از شهر خودش ملیاری حتی چه بستا بایزید تشکیل کنه گفته است که شیخ خرقانی که مریدشون حساب میشه مقام شیخ خرقانی میفرماد که از مقام من در نزد خدا و در عرفان فضا باغان بیشتر از خود منه یعنی مقام مرید بیشتر از مرادش با یزید بوده علتی که میاره میگه عزتی اینه که من همسر اختیار نکردم و نان عیال و فرزند نلادم و بازی یزید همسر اختیار کرد و بیلزد و یزوم کشید و نان زر بچه‌هاشو داد مقام عرفانی او بسیار واسه شیخ خاورانی. این شیخ ارشاد علی مقامش میبسته از وایزی بود خود این خودی وایزی میگه که اظهار نکرده. اینا باشه. پاسخ اسلامی این سوال جناب لیوازه که چی هست در این تذکی نیست. خود ائمه اطهار که سلاطین عرفان هستند، بانیان عرفان هستند، ما میدونیم که اکثرشون حتی بیش از ده کم سر داشتند در این سوارت نفس خرد سربت در این سوارت بیش کم سرد داشتن سر این سال مطلب واضح اما برگردیم به مسئله اساسی تر و تاریخی تر ما شاهدیم که به مثل صغرات و افلاتون به عنوان یکی از مشهورترین بانیان عرفان و حکمت توکیدی در یونان باستان به این مسئله بسیار اصرا دارن زندگی آنها نشون میده که آنها هر کدوم در استباط با زنی، عارفه و حکیمه بودند اسم برخی از اینها حتی در تاریخ ثبت شده ثروت تلکی علاوه بر آن همسر شروری که در تاریخ ثبت شده داشت یک زن حکیمه بزرگی بوده که همیشه با ایشون دیالوگ میکرد و گویا که حتی مریدی میکرد از به اون زن حکیمه افلاتون هم معروفه که همچین زن قدیس و رو میشناخته و با او رابطه عرفانی داشته. داستان اشق افلاتونی که در کتاب جمهوری افلاتون هم اومده در واقع همون عشق عرفانی و رابطه ای و رابطه ای بالاتنهی ایگزارو ای مرد. رابطه ای بالاتنهی ایگزارو ای مرده. خود افلاتون تکید میکنه که هیچ مردی حکیمی نمیتواند بدون ارتباط با یک زن قدیس و به حکمت و توحید و به کمال برسه این مسئله رو در تاریخ انبیاء هم ما داریم ما میدانیم که حالا سبای آدم و ما میدانیم که ابراهیم بدونه ذریع بزرگ مثل حاجر هرگز به اون کمال ابراهیمی نمی‌رسید. این مسلم و واضح خانه کعبه ما میدانیم که خانه هاجر بوده شده خانه خدا قبلگاه مسلمینه موسا بدون داشتن چنان مادرانی دو تا مادر دار. دو دوتا مادر حکیم و قدیس به همچون مقامی مطالعه زندگی خصوصی حضرت موسا رو نشون میده حضرت عیسی و مادرش حضرت مردم که واضحه ولی مهمتر از رابطه ارفانی و الهی حضرت عیسی با مریم مجدلیه که یک دوران حتی زن بلی گونکه بوده زن شروری بوده که حتی در روسبیگری غرق و تباه شده بوده و نجات پیدا میکنه و ما میدانیم که دین عیسی رو مریای مجدلیه نجات داد اون یازده حواریونش بلا فاصله بعد از بسلام محصوب شدن مسیح همه در جا کافر شدن و مریای مجدلیه رفت اینها رو این تو مرتبه بیدار کرد و ایمان رو به اینها برگردوند ما میدونیم که مسیحیت حقیقی در واقع میشه کنه مریم مجدلی وسیعه ایسا مسیح مریم مجدلی, مجدلی بود ما میدونیم رابطه پهنبار اسلام با خدیجه ما میدونیم که بی خدیجه اسلامی نمیتونست پدید بیاد بیزنی مثل خدیجه که یک راکفلر دوران خودش بود تمام ثروت خودش رو صرف رسالت پانبر کرد رابطه علی و فاطمه محرض اینکه ما در حدیث قدسی داریم که حضرت فاطمه مقصود دین اسلام و کمال هدف خداوند در خلقت عالم و آدم بوده پس در واقع میشه گفتش که زن به زبان اصول شناسی یونان ارس رفان یا عروس قرفانی همونطور که عروس در حجابه زن هم در تاریخ همواره در پس پرده هجاب بوده این چیزه واضحیه بی تردیده اگر تعداد زنان عارف و بیشتر از مردان عارف و در در تاریخ نبیده باشه کمتر نیست ما میدانیم که صدها زن مومن مخلصی که کسی معرفت میکردن از محضر حضرت فاطمه و در روابط با خود شخص پیانبر اسلام کم نبودن اسم اینها خیلی نیست برخی اسمشون هست این زنانی بسیار بزرگی بودن این ها. و تعداد اونها از اصحاب صفه و اصحاب کبار پیانبر هم تعداد این زنان بیشتر هست و این سوال که آیا زن عارف ممکنه یا نیست ولی بله زن عارف ممکنه است یک دو مرد بدون زن نمیتونه به حکمت عرفان و اخلاص برسه این سر آدم و هوایی است اگر زن باطن مرده از بطن چپ و از سینه مرد اومده بیرون پس جمال دل و روح و عشق مرده هویت ذاتی و عبدیت و جاودانگی مرده خوب اگر از یعن خود شناسی پس عن باطن شناسی پس امکان نداره این باطن شناسی در رابطه با یک زن قدیس و امکان پذیر بشه و یا یعنی نهایتاً به یک زن قدیس و خط نشه همونطور که شناسی زن هم نهایتاً به امام شناسیش میرسه به یک مرد قدیس و حکیم عارف میرسه برای همین آن سخان معروف پیامبر و امام علی علیه السلام که خودشناسی همان خودشناسی است ولی هیچ کسی خودش به خودی خود خدا رو نمیتونه بشناسی. انسان خودش به خودی خود فقط خود فریبی میکنه و از این رهایی نداره. من گوشه کردم، کنم انزوا پیشه کنم ورد بخونم شعر بخونم نواز بخونم تا قلم رو بشناسم این حرفیست که لاف محمل جز جنون هیچی از روش در نمی نیچه که سوپه آلمان یک سخن بسیار زیبایی داره. میگه انسان نفسش به قول و ظلمانیه و اینقدر انسان غرق در فریب و غرور خودشه که در تنهایی خودش تبدیل به یک دیو مجستن میشه دیل میشه نمیدونیم برای همین روبانیت در تاریخ جز نفاق و جنون و شیطنه پدیم نیورده چه روبانیتی مسیحی بوده چه بودایی بوده چه در قالب اسلام بوده روبانیت یک جنون از در روبانیت و همسال افتیار نکردن هیچ کس به هیچ جایی جز جنون و فلاکت نرسیده دین از توش در حالا که هم گشماری هم بودن ازدواج نکردن ولی اینها ضد ازدواج نبودن اینها روبانیت و ریاضت پیش نکرده بودن تا خود قرآن هم آمده به خاطر شرایطی بیجید داشتن و اراده خدا هم گشماری هم از مردان یا حکیمه و ح بودن که ازدبار براشون پیش ها و اونارهای خودشون رو کردن ولی نبرگار میشینی نبرگار میشین اون رو باستی بتونید و این نکته نیست که عشق آدم هوایی آن گوهره معرفت ارفان است. یعنی جان عرفان عشق است بی عشق به معرفت نمیتونه انسان برسه این مسلم دریایی از در عدبیات در ارفانی ما اینجا ثابت شده منتا عشق مقدس پیانبال اسمان می‌فرماد که عشق تماماً آداب است و کسی که عاشق شود و اسمت پیشه کند افت پیشه کند هرگاه که بمیرد شهید مرده است شهید ما می چه مقامیه شهادر مقام امامته یه همچین عظمتی داری عشق بین زن و مرد در تاریخ مصننه هیچ پیامبر و امامی نبوده که این عشق رو در به خودش نداشته باشه اون عشق پاک و مقدس این عشق مطور محرکه معرفت نفس و ارفانه اون عشقی که بر اساس تروا عزت و اسمت عمل کنه مطور محرکه و عرفان بدون این عشق هرگز ممکن نیست و حرکتی نخواهد داشت عشق و عرفان برای همینه همیشه روی سکه دین بوده عشق و عرفان شما فهمودیم که هیچ کس به خودی خود نمیتونه خودش رو بشنسه بله. برای این پس گفت که خودشناسی نیاز به یک رابطه داره برای بله. اما یا هر ای میتونه این خودشناسی رو برای یک فرق ممکن کنه لطفا توضیح بدید مچنین خواهش میکنم این رو من نفرمودم. علی می‌دم الفالمشکل هیچ کس نمی‌تونه به خودی خود خودی خود بشناسه خود قرآن کریم ذات طبیعی و خود به خودی انسان رو معرفی کرده مثلا که انسان دشمن آشکار خویشتن است به راستی که انسان کافر و ظالم است جاهل است این انسان خود به خودی خود انسان این خود هر کسی همین است الا اللوه اون منو امور اون به واسطه برای همین هر کس میخواد ببینه که خودش چیه؟ من سوال کنم که من چیستم؟ اگر بخوام به خودم دور نگم به این نیستم که من نیستم چرا برای اینکه هر که میخوام بگم منم مال من نیست وارد است از بیگانه است نه اسم مال خودم نه فامیلیم شغل و به من دادن همه وراست امپراتوری شاهی بیرونیه شرایط جبری جبری اقتصادی جغرافیایی، طبیعی، هیچ کدوم من نیست، غیر منه خب بنابراین با همین تعریف منطقی خامدن محسوس هر انسانی پاسخ نهایی به این سوال رو میتونه مترادف با فنا قرار بده. من خودم به خودی خود چیستم؟ پاسخی من نیستم من نیستم، نه لازم معنا نیستم، حتی علاقه تن هم نیستم تو این رو که ما ما من نیستم، تنه من نیست. پدر مادر من با هم ازدواج کردن. آه. از دست پدرم، در ذهنی مادرم این دو پدید اونم عقیده بود از پدر مادرم بود چون از غیره با مرد من این من از دست من میره. پس واقعا نیستم. شوخی نیست. این واقعیت. بنابراین هیچوقت انسانی نمی‌زنه خودش با اجرای احکام دین، واقعا به خودشناسی و معرفت به اخلاص در و به خدا در خودش برسد. نمیتونه به یک مؤمن دیگری داره تا آینه او بشه تا این غیریته ها این ویرانیزی را از او بگیره این مؤمن دیگه بلند مفهوم نهاییش شما رمانه این در واقع آمده که مؤمنان اولیای هم دیگر باستی باشن و هستند. این سخن از پیامبر اکرم چون مؤمنی به دیدار مؤمنی میره خداوند که دیدار میشه مؤمنی که به دیدار مؤمنی میره با خدا خدا رو دیدار میکنه خداوند کریم هست. ستا مومن که با هم همدل میشن و هم راز میشن چارموی خداستی به آنها حاضره این مفهوم کاملا واضحه پس واقعا بی پیر بی یک آموزگار معنوی و روحانی هیچ کار تنها به خدا نمیرسه در خود دین هم همین کامی نداشته یا منافق میشه یا حقبال میشه یا دیوانه میشه اون دین تبیل به تکبر و غرور و جهل و جنون و شیطنت میشه تبیل به توازه و محبت ها؟ و و معرفت و ادالات. نمیشه پس واقعا انسان اتیاج به امام و پیر داره اون امام امام مطلق زوزی نیست باشه من امام زمان باشه اگه امام زمان به پیش من من چه میدونم اون کیست هیچ به هرهی نمیتونم از داشته باشم گام به گام من به امام زمان و به امام مطلق میرسم ولی در استباد با یک مومنی دیگری دیگر که دیگر یک ذره در ایمان از من برسره در اراده نسبت به او و اینکه اراده یعنی میدین ظلم و نفسم رو به او میس و میگم که به من لبس کن و به من نشون بده من رو به خودم نشون بده اون امام منه برای همینه به مثلا ارفانه کسی مثل ملا صورا که یک کاخی از فلسفه ارفانی آفریده، چرا هیچ زالده به پدید نروبر چرا وارد فرهنگی مردم نشد مثل مولانا و حافظ چرا برای اینکه ایشون منکره این نیاز واجب در معرفت و رشد بود. ایشون متعاض بود که انسان نیازی ناله داشتن پیر داشته باشه، امام داشته باشه. انسان نیازی به اراده عرفانی نداره، هر به خودی خود, خود میتونه. در میشه ایشون این فکر منفصل اشی بود، این فکر فکر علوی و عرفانی علوی نبود لذا دریای در از و عرفان هیچ خاصیتی در فرهنگ ما، نه با و وارد فرهنگ ما هرگز نشده است. علتش اینه این حق واجب وجودی انکار شده این حق در عرفان هندو هست در عرفان هم هست در عرفان چینی بوده و این فقط مختص اسلام نیست ولی در اسلام این حق تبدیل به تمامیت هم هممغم دین و معرفت و نجات انسان شده و در هیچ مذهبی تاکنون این هم اهمیت پیدا نکرده بوده مسئله تمام یا پیر